Awzu billoh, mina shaitan, il-raġim. Besman il-raġim, لا حول ولا raġim الا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين il والسلام على سيدنا il-raġim, il-raġim, وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في العرزين واللعن على أعدائهم أعدائ الله عجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شهادت شهارمين امام همام عبل حسن علی بن الحسين امام زين العابدين علیه افزل تحییت و سنا امام بزرگواری که سکان امامت رو در سخت سخترین شرایط عصر آشورا در دست گرفت و سی و سال یعنی تا سال نبد و پنج هجری یا نبد و چهار در سخترین شرایط شیعه به مدیریت و امامت جامعه پرداخت کلیدی ترین نقش رو ایشون در انتقال حادثه کربلا و عمه بزرگوارش زینب کبرا دارند بعضی از ارباب تاریخ نوشتن شیعه در این دویست و تقریباً پنجاه سال امامت امامت یازده امام قیر از دوران غیبت شاید در هیچ زمانی به سختی شرایط زمان امام سجاد نداشته تعبیر تاریخی این 34 سال قد امتل بالفتنه و الاضطراب و الغلقه و الخوف جامعه اسلامی جامعه دینی در فتنه ها اضطرابات نگرانی ها و سختی های فراوانی بود من دو دوسته نمونه خدمتون بگم اون وقت بحث اصلیمو میگم چیه امام سجاد با شش حاکم هم همعصره که یکیشون عبدالملک الملک خبیس هست که بیست و یک سال سکندار خلافت و در واقع امیری جامعه اون روز بود آدمی که از نام خدا حالا نام امیر المامرین که جای خودش اینا با علی بغض داشتن از نماز از عبادت تنفر داشت آدمی که رسمن اعلام کرد اتقالله رو از خطبه های نماز جمعه بردارید اولو من من امن الامر بالمعروف رسمن امر به معروف رو ممنوع کرد آدمی که یه فرماندارش فقط حجاجه ببینید چه کرده به قول عمر ابن عبدالعزیز میگه تمام خبیصای دنیا رو اگر توی کفه ترازو بذارن حجاجم تو توی کفه لو جاعت کل امتن به خبیصه و جئنا به حجاج لغلبنا هم. ما بر اونا قلبه میکنیم آدمی که کمیل ها کشته سعید ابن جبهر ها کشته غنبر ها کشته هزاران شیعه رو قتل عام کرده امام سجاد در دوران چنین کسیه من چرا این رو امشب مطرح کردم دیدم خیلی از این کتاب هایی که راجع به امام سجاده یه نکتهی رو توجه نکردند و دوران امام سجاد رو دوران خانه نشینی گوشگیری دوران ازلت دوران ترک ارتباط با مردم معرفی کرده یه وقت دیدم یه آقای در قوم یه کتابی نوشته من خدمت ایشونم رفتم کتاب هم عربی است، اصلش عربی است، ترجمه فارسی هم شده ترجمه فارسیش هست به نام جهاد امام سجاد من به ایشون ارز کردم که از علمای قوم شما به چه دلیل این کتاب اسمشو گذاشتید جهاد امام سجاد چون فرمودن من معتقدم امام سجاد سخت ترین جهادو در این 34 سال داشته و این جهاد جهاد به مراتب سخت از جهاد در جبهه نظامی است شما ببینید آقایان خواهران مدینت الرسول که صدای قرآن ازش بلند بود مدینت الرسول که مرکز در واقع سخنان پیامبر و احادیث او بود عبالفرج در العقانی می نویسه تبدیل شده بود به مرکز موسیقی و قنا تبدیل شده بود به مجالس مختلط خانندگان زن مجالس می گه بدون سطر بین زن و مرد بدون حجاب، بدون پرده ای صاحب کتاب اشعار شعر القنا و شعر فل مدینه و مکه می نویسه مدینه و موسیقی کارنابال های قناه توش حرکت میکرد ولم یم نعابده هم نعابد من میکرد و نعالم من کار میکرد مدینت الرسول تبدیل شده بود به یک چنین فضایی ببینید چقدر تغییر حاصل شده پنجاه سال بعد از رحلت پیغمبر گرامی اسلام که یکی از این آقایون میگه رفتم پیش انس ابن مالک این تو منابع اهل سنت هم هست به نام زهری میگه گفتم انس تو ده سال شبان روز با پیغمبر خدا بودی چه قدر از اسلام باقی مونده یه نگاهی که همین قبله و نماز بقیهش همه دست برده بقیه همه علاوه این سنت قد امیتت از بین رفته تازه همین سلات هم گفت زیعوها آیان عزیز خوهران گرامی اینا رو میگم بدونی تاریخ تکرار میشه تاریخ هر هرچقدر ما پیش میریم مثل یک رودخانه جاری آب فرم کنه اما اصل جرائیان هست هست اندر صورت هر قصه ای خردبینان راز معنا هستی، ای. این عبد الملک مروان است اون ولید است که تو حوض شراب می اون اونقدر شراب می که سر حوض پایین می آمد اینا زمام دار بودن زمان امام سجاد علیه السلام دوران اینگونه است دوران فتنه‌هایی مثل واقعها و جریان‌های مختلفی که بعد از شهادت امام حسین گروه‌های مختلفی که شکل گرفتند خب عرض من امروز امشب اینو خوب دقت کنید امام سجاد برای حفظ شیعه چه کرد چهار تا اقدام مهمش رو من تو این وقت کم میگم تو یاد داشتم 15 تا نوشتم ولی چهار اقدام مهم امام سجاد رو تو این دوران سی یا سی و سال امامت برای شما میگه یک زنده نگه داشتن یاد آشورا شما میدانید عبا عبدالله علیه السلام تو کربلا شهید شد بدنها هم مثل فردای حالا تو روزه خواهم گفت چجور به خاک سپرده شد بلا فاصلم تحریف کردن تو شام غضیه رو گفتن جبر بوده خدا خواسته حسین کشته شه خدا خواسته یزید بمونه بلافاصله ام پخش کردن این در و اون طرف که به اصطلاح حق مثلا با یزید بوده با این شکل قضیه رو تحلیل کردن که خیلی تاسف خوردم این روزا دیدم یه کتابی تو یکی از این کشورات چاپ شده براءت یزید ابن معاویه من دم حسین گفتم ابو عبدالله چیزی هم بدهکار شد بیگناهی یزید از خون امام حسین متاسفانه تو این شپه ها هم گایی مطرح میکنن و میخوان حسابی عرض میکنم اینجا قضیه کربلا رو به گونه جلوه بدن که مسئله شمرایزید یه دست در نکنیم به شون گایی دست مریضادیم گفته بشه لذا شیخ صدوق تو اعتقادات شیخ صدوق هزار سال پیش بوده میگه اعتقاد ما این است قاتل حسین علیه السلام در جهنم است اعتقاد ما اینه از ابا عبدالله علیه السلام معصوم کشته شد مظلوم کشته شد آقایان خوهران امام حسن به شهادت رسید حالا این نهزت باید حفظ بشه نمیتونست امام سجاد مجلس بگیره نمیشد روز آشورا دسته رو انداخت نه خطبه جمعه در اختیار ایشون بود نه منبر و مهراب در اختیار بود نه اجازه داشت مجلس عذاب پا کنه چرا؟ کم کم شد زمان امام صادق مداح میامد ابو هارون میخوند امام صادق, صادق گریه میکنه زمان امام رضا دعبل میخوند مجلس تشکیل میشد تو منا کمیت میخوند امام باقر اشک میریخت اما عجیب است تنها وارث کربلا موثق ترین گزارشگر تنها وارث معصوم امام سجاد امام حجت خدا اجازه یک مجلس رسمی تویش مدینه نداره و ما چه کرد که کربلا حفظ بشه خوب دقت کنید مورخین نوشتن امام سجاد این آرم انگشتری که دستش بود العزت لله بود انگشتر روش چه چیزی میکندن حالا می نویسن بعضیا یه مطالبی می نویسن العزت لله حسبنا الله علیه توکل تو این ختم انگشتر امام سجاد بود دستور داد یه انگشتر دیگه برای ساختن روش نوشتن شقی قاتل حسین ابن علی قاتل امام حسین بدبخت شقابتمنده تو دست امام باشه همه ببینن یه آرم یه علامت زنده نگه داشتن کربلای حسینی گریه جمعی نبود اما خودش آب میدید عشق بریخت می قضا میدید عشق بریخت می از کنار رود رد میشد آب موج میزد عشق بریخت می دلیل گریه رم میگفت پیدا نشند بعضیا در آینده بگن گریه کار درستی نیست گریه عرض میکنم جایز نیست دلیل کارش هم مستند به نبی خدا میکرد چون میدونید انبیه ها معصوم خدام به پیغمبر ما که خاتم انبیاست پیغمبر گرامی اسلام اون چه همه انبیا دارن او داره در این حال می فرماید اولائکاللذین هداهم الله فبهداهم هداهم اقتده نه به نفسهم این انبیای گذشته همه هدایت شدند، همه معصومن تو به اینا اقتدا کن این آیه دلیل بر اسمت انبیاست مرحوم سید مرتزا در تنظیح الانبیا با استناد به این آیه خیلی شبهات و جواب میده پیغمبر تو به انبیا اختدا کن آقا عشق بریخ میگفتن چرا گریه میکنی؟ میفرمود یوسف گم شد مدتی پدرش او رو ندید پنهان شد میدانه زنده است اما یعقوب پیغمبر اونقدر گریه کرد که چشماش از دست داد وقت من چگونه گرگه نکنم یک روز 17 تا یوسف رو جلو سر بدجلوی چشم ما سر از بدنشون جدا کردند که این 17 کنایه از شهدای بنی هاشمه چون شهدای بنی هاشم 16 17 تا 18 نفرم اما این روایت داره سبعت هشر 17 نفر از عزیزان ما برادرم عموم پدرم چرا گرگه نکنم خب خود این نگهداشتن کربلاست چرا اینقدر بر بوکا تاکید شده چرا اینقدر میگه اخی گریه چه اثری داره چه میکنه به قول یکی از عزیزان همون طور که زبان ترجمان عقله تا یکی حرف میزنه میگه این پزشکه حرفاش معلوم پزشکه تا یکی صحبت میکنه میگه این رشتش اقتصاده تا یکی صحبت میکنه میفهمید چه کار است عالم بی بیان ترجمان عقل به قول این عزیز عشق ترجمان دل دل پاک عشق داره دل به اسطلاح پاکیزه عشق داره اگر عشق ریخته شد این نشانه تحوله این نشانه تغییره اونهایی که اعتراض به گریه کردن زمان پیامبرم اعتراض میکردن پیامبر اکرم بر ابراهیم پسر هجده ماهش عشق میریخ یکی از اینها گوه این خوب نیست چرا گرگه میکنید آقا فرمودن قلب میسوزه چشم عشق میریزه چشم من جزع که نکردم فضع که نکردم جزع کنی فضع کنی کفر بگید چرا اینطور شد ما قال رسول الله رسول الله لشیعن پیغمبر هیچگاه تو هیچ اتفاقی نفرمود اگه اینطور نمیشد بهتر بود هر طوری شد حضرت گله نکرد امام سجاد جوانا هم پاسخ به شبهه داد کارش رو استناد به معصوم کرد هم نهزت عاشورا رو حفظ کرد می‌فرمود البته اینا که میگم تو سخنرانی نمی‌فرمودا نمی‌شد یه نفر دو نفر سه نفر صحاب تو مسجد مدینه پنج نفر ده نفر جمع می‌شدن آقا برایشون حرف میزد تا هوا روشن میشد یه آیه قرآن با صوت می‌خوندن جلسه جمع میشد اختناق بود ازتراب بود، دوران سختی بود و یکی از اصحابش فرمود سه روز در اسلام بر ما سخت گذشت تو اسلام سه تا حادثه سنگین داشتی فرمود یکی روز شهادت حمزه سید و شهده عموی پیغمبر است که جدنم آمد بالا سر بدن حمزه فرمود ما وقفت و موقفن اشد من منهاست تا حالا هیچ کجا اینقدر به من سخت نگذاشت چه اموی مصله کردن قطعه قطعه کردن جای دوم فرمود شهادت جعفر ابن ابی طالب بود دو تا دستاشو از بدن غد کردن پیغمبر یرامی اسلام و امیر تو جنگ موته نبودن ولی رسول خدا اومد رفت خونه اسمای بن تومیز ای عبدالله جعفر شوهر زینب بچه بود آقا نشوندش رو زهانو دست کشید سرش اسما تیز بود یه نگاهی کرد عرض کرد یا رسول الله تفعل و مفعلو بل ایتام این کارایی که شما با این بچه انجام میدی با یتیم انجام میدن فرمود خدا صبرت بده جعفر شهید شد میدونید این دو تا شخصیت جزء افتخارات ما هستند بر فراز منبر شام سید و ساجدین هم فریاد زد ما افتخاراتی داریم اوتینا ستن و فزدلنا به سب ما چند شخصیت داریم یکیش همزه است یکیش جعفره امام سجاد فرمود سه روز در تاریخ اسلام بر ما سخت گذشت یکی شهادت همزه یکی جعفر بعد فرمود لا یوم که یوم الحسین اما سختی و مشکلی و مصیبتی به سختی کشتن بابام امام حسین نبود وقت میدوند گیرگه امام سجاد برای چیه ای جمله دقت کنید نه کشتن امام حسین او جای خود داره مسیبت سختیست فرمود کلون یتقربو الالله به دمهی بقیان و ظلمن و ادوانا دلم میسوزه حسین ما رو قربتن الالله کشتن هر کسی میخواست با کشتن او به یه ثواب برسه الله اکبر چقدر یه جامعه افول میکنه چقدر یه جامعه سقوط میکنه که کلون یتقربو علالله به دمهی به خون امام حسینگ اینا رو ما از امام سجاد داریم کی گفته دوران سکوت این جهاد زینب کبرا بعد از کربلا زیاد زنده نمانده این امام سجاد که یه کیسه ابریشمی زرد نوشتن تو تاریخ درست کرده بود خاک کربلا داخلش ریخته بود هر وقت نماز میخوند این کیسه رو باز میکرد میفرموندید خاک کربلا است خاک قبر حسید بر پدر من بر خاک کربلا سجده میکرد خدا رحمت کنه همه گزشتگان مرحوم ابن قولوی رزوان الله تعالی علی پدر در قومه پسر در کازمه کنار قبر امام کاظم و کنار قبر شاگردش شیخ مفید، مکتب بغداد، شاگرد مکتب قمن در حدیث ابن قولویه استاد شیخ مفید است. در کامل و زیارات میگه ابا حمزه آمد خدمت امام سجاد، آقا بهش فرمود زور قبل قبر الحسین کُلّ یَوْم. ابا حمزه هر روز برو زیارت قبر امام حسین اگه نتونستی هر جمعه عجیب این روایت فرمود ابا همزه اگر کسی زیارت جد, جد زیارت قبر جد هم حسین نره خدا رو سبک شمرد چه حرفیه خدا رو سبک شمرد؟ بعضی هم یه کجا بریم پولمون رو کجا خرش کنیم بذار جهیزیه تحییه کنیم بذار خانه برا فقران اونم بخرد جاهزیام بخر مکه برو و کربلا هم برو کعبه باعث قوامه کربلا هویت شیعه است چرا میدونید شما ما فرشته هایی داریم تا آخر عمر یک بار نوبتشون میشه برن زیارت قبر امام حسین این قد با مار بالاست یک بار نوبتشون میشه خب اینا حرفای امام سجاده نقش اول ایشون زنده نگه داشتن یاد آشوراس با توصیه به زیارت با سجده بر تربت با گریه بر عبا عبدالله با انگشتری که تا قیام تا آخر هر که ببیند شقی قاتل و حسین ابن علی علیه السلام این یک خوب انایت بفرمایید نکته دوم که خیلی مهمه و گاهی خیلی از این سیر نویسان ازش قفلت کرده آیان خوهران زمان امام سجاد نمی شد کلاس دو هزار نفره و ست نفره تشکیل امام سجاد کلاس درسای دو نفره سه نفره یه نفره سد و تا کادر ساخت شاگر تربیت کرد کیا یحیبن, خالد، یحیبن امتویل ابو خالد ابو حمزه سمالی که سه تا شهید داده مفسر قرآنه بذارید این حرفو بزنم درستم هست شایردان حلقه اول امام باقر و امام صادق تربیت شده امام سجاده شیخ توسی 170 نفر رو نام میبره اینا شایرد خواسته ایشون بودن سعید ابن جبه جابر ابن عبدالله انصاری صحابی بعضی تفسیر خوندن، بعضی هاشون فقه خوندن، بعضی عرض میکنم که مباحث حدیثی پیش امام خوندن منتها اون نکته ای که سیر نویسان کمتر بهش دقیت کردن خوب با من باشید اینو من بگم چون یه برداشت اخلاقی میخوام بکنم، از یه شبه هم میخوام دفاع کنم میدونید برده زمان امام سجاد زیاد بود، چون فتوحات زیاد بود، بردم زیاد بود یکی از کارای امام سجاد این بود این برده ها رو میخرید یک سال آموزش میداد آزاد میکرد پنجا هزار نوشتن ابن شهر آشوب و دیگران پنجا هزار برده تو مکتب امام سجاد تربیت شدن هر کنوم هم دو ترم دو ترم یک سال آزاد شد. چه آدم ها؟ قصه یکیشون وراتون بگم دیگه خودتون بخانید حدیث مفصل عبدالله ابن مبارک میگه رفته بودم مکه قهتی بود باران نمی آمد مردم نماز باران میخوندن هیچ خبری هم نبود یه روز دیدم یه قلام سیاه چهره یمعیت و شکاف رفت یه گوشه تنها سرشو گذاشت به سجده گفت الهی لا عرف و رأسی من از خدا یا سر از این سجده بر نمیدارم تا آب با بارون از آسمان بیادیم بنده ها سیراب بشن میگه عبرا فشرده شد یه غلام آقای کسی رو تحقیر نکنید و به قیافه ها نگاه نکنید به چهره ها نگاه ند یه وقت ببینید همونه که هیچی حساب روش باز نمیکنی اندالله چه مقامی داره خیلی حواستون جمع باشه آرمدار نیستن آدم خوبا پیش خدا امیرالمؤمنین فرمود هیچ کسو تحقیر نکن خدا اولیایشو میانه اینا مخفی کرده یک کاری میکردن بعضی ادم میبینه اصلا تو آمار نیستن اما چه مقامی چه جایگاهی باران اومد به دعای این غلام سیاه چهره میگه تعقیبش کردم دیدم آمد خونه امام سجاد تو مدینه فهمیدم از قلامان امام سجاد که حالا قصتش مفصله من تو تا همینجاش محل کلا اینطوری بودن اینا امام سجاد به عدنا مناسبتی اول محرمزون که میشودا جوانا اینا درس شد تمام اینا رو جمع میکرد یه قلم کاغذم دست میگرفت، خطاهای اینا رو مینوشد زیاد بودن یکی دیر میومد یکی زود میومد یکی یه چیزی میشکست یکی عصبانی همه رو مینوشد شب عید فطر که میشد همشون رو جمع میکرد میگوی یک صدا بگید خدا علی ابن الحسین از ما گذشت تو هم از او بگذر تو هم از او بگذر یک صدا بگید ببرید خطاهاتون رو نوشتم بگید خدا او ما رو بخشید امام معصوم امام معصوم اینطور جوون ها. من میخواهم ای می خورده به هر حال تذکر اخلاقی هم زمن منبر به خودم و شما بدم بگذرید از هم، قهر نبوشید پیغمبر خدا که مبعوض شدا یه آیه نازل شد کاش این آیه بشه سرلوحه مسئولین ما قوای ما دولتی مجلسیا، مجدسی ها، قوه قض هممون، هممون مردم همون، خیابون همون، کچه همون، زن و شوهر ها, پدر و مادر ها. پیغمبر خدا که مبعوض شدا یک آیه نازل شد پیغمبر اگه میخوای پیش بری ستا کار بکن خوز الاف وعمر بالع و اعرز ان الجاهلین اینا که جلوت وای میستان علیه شعار میدن و اینا که قبول ندارن سه دستن یه دستشون شون خطا کارن میگن میگن اشتباه کردیم ببخش یه دستشون شون ناآگاهن اینقدر تو گوششون کردن پیغمبر ساحره بنده خدا پنبه تو گوش میکرد میگفت توافت ترسونده بودنش بودن ساحره بودن جادوگر کاهن مجنون اینا رو آگاهی بده یه عده شونم کم فهمن کشش ندارن بیش از این نمیتونن بگیرن اعرز ان الجاهلین سر به سر اینا نزار از اینا اعراض کن من روایت دیدم وقتی این آیه نازل شد پیغمبر جبرئیل اومد خدمت پیغمبر حضرت قائ برادرم جبرئیل من چه جوری خوزل اع و امر ال اور اینو برام توضیح بده بعد چیکار کنم جبرئیل عرض کرد یا رسول الله سلمان قطعک اونی که باید قطع رابطه کرد وصل کن اونی که محرومت کرد اعتا کن اونی که ظلم کرد تو به ای ظلم نکن پیغمبر خدا امام صادق فرمود وقتی به این آیه آ... عمل کرد آیه بعدی نازل شد اینکل علا خلقن از این حالا فهمیدید اینکل علا خلقن از این کجا نازل شد بعد از این آیه خوز العف و امر بل اوص آقا امام سجاد یکی از این برده ها رو صدا زد کارش داد فلانی جواب نداد فلانی جواب نداد دفعه سوم ما باشیم عصبانی میشیم دفعه سوم آقا فرمودن چرا جواب نمیدین آقا خواستم عصبانیتون کنم میخواستم ناراحت بشید میدونستم من ایمانم از شما میخواستم ببینم میتونم با این سه بار جواب ندادن فرمود حالا عصبانی نمیشم آزادت کرد من وقت نیست نارو بگم به چه بحانه به چه بحانه با یک اشاره بیش از پنجا هزار برده هم مبارزه با بردهداری بود هم آموزش بود هم تربیت بود آدم کمی نبودن ها من روایت دیدم عبدالله جعفر عبدالله جعفر پولدار بود. شوهر حضرت زینب سلام الله علیه آب به دعای پیغمبرم پولدار شد میدونید که بچه بود داش گلبازی می‌کرد پیغمبر اکرم رد شد گفت چه کار میکنیم؟ گفت یا رسول الله اینا رو درست میکنم می‌فروشم پولش رو می‌رم قوراکی می‌خرم معلومه شم مه اقتصادی از بچگی داشته حضرت بهش فرمود بارک الله فی صفقتک ان تو همه معاملاتت برکت باشه تا آخر عمرش توی معامله ضرر نکرد امام زمان براتون دعا کنه دیگه ضرر نمی‌کنی امام زمان شما خمستو بده شما توجه به حلال و حرامش داشته باش امام جواد فرمود مالی که خمس داده بشه ما تضمین میکنیم افسایش پیداش اما اکسش هم هست جوانا به خدا قسم به خدا قسم اگر کسی از دینش برای دنیا مایه بذاره زرر بزرگتر گیرش میاد حدیث. فرمود اگر کسی از دینش مثل عمر صد از دینش مایه گذاشت برای ری فرموندهش هم ازش گرفتن این روایته فتح الله علیهم ما هوه ازرمنج نگی ده دقیقه مغازم باز باشه دو تا مشتری دیگه را بندازم نه ببن برو نماز جماعت که آرزوی من اینه انشاءالله پخشم بشه انشاءالله مردمم بشنوند آرزوی من اینه یه روز صدای ازان که بولم میشه یک مغازه اطراف حرم امام رضا علیه السلام فاطمه معصومه علیه السلام باز نباشه ان و همه اصل دور زریخ خالی بشه همون طور که در مسجد الحرام مسجد النبی حرم پیغمبر خدا و حضرت محمد این نقش دوم امام سجاد سید الساجدین علیه افضل التهیته و ثنا است مسئله تربیت شاگردان تربیت کادر و تربیت نیروها همینجا به شما عزیزان عرض کنم این افرادی که امام سجاد علیه السلام تربیت کردند افراد ویژه‌ای بودند ابو حمزه سمالی کنار قبر پیغمبر کنار قبر امیرالمومنین تفسیر قران می گفت ارشکردم پدرش شهید بود اینم نکته دوم خوب عنایت بفرمایید دو تا نکته دیگر رو به اختصار میگم سی و چهار سال امامت امام سجاد زنده نگه داشتن یاد امام حسین تربیت کادر و نیروهای ویژه سومین مهوری که متاسفانه گایی ازش قفلت میکنیم مسئله فرهنگ دعا و معارف اسلامی امام سجاد است جوان ها از این صحیفه سجادیه قافل نشید این زبور آل رسول است. دعاهایی که در این صحیفه آمده اولا ببینید تمام این دعاها با صلوات بر محمد و آل محمد و هم گاهی در یک دعا چندین دروده بر پیامبر و آلش این دعاها مباحث اعتقادی دارد مثل توحید، امامت مباحث اجتماعی دارد مثل مباحث اخلاقی دعای مکارم مباحث ارز میکنم سیاسی دارد مبارزه با ظلم هست که البته میدانید السایفی که الان در اختیار ماست تو بازار همه دعاهانی از پنجاه و چهار تا دو است. آخرین کامل شده صحیفه دوم و سوم و چهارم همه جمع شده بالغ بر دویست و پنجاه و هفت دعا که خودش معارف بلند دینی است. من یه وقتی هیئت یا بودن از غرب به قم یک گفتهجوی بود جلسه بود چند تا از این که کشیش ها اومده بودن اونجا صحبت شد رشته اینها عرفان بود من خودم بودم تو اون جلسه یکی از حرف هایی که اینا زدن گفتن ما یکی از روش ها و شیوه های عرفان رو صحیفه سجادیه میدونیم و از اون استفاده میکنیم بیش از 70 شعر بر این صحیفه سجادیه نوشته شده بخوانید دعای برای پدر و مادرتون باباها دعای برای اولاد یه وقت باز کنید من یه وقتی یه جای این عرض کردم شما این دعای هشتم صحیفه سجادی رو ببینید بیش از چهل چهار تا بیماری اخلاقی رو امام سجاد اونجا آورده بیماری اخلاقی و تو پزشکی ما آقا معلومه قند و چربی و اینا با چی باید آزمایش معلومه اما بیماری اخلاقی میزان غذب و هرس و عرض میکنم که قصابت که با آزمایش نمیشه امام اینا رو شمرده اونجا اللهم انی اعوذ بک من هیجان و ثورت الغضب جوونا یه بار ببینید مرور کنید صحیفت و خونتون باشه اینها معارف بلند امام سجاد است که به تعبیر یکی از بزرگان قوم و مراجع خدمت ایشون بودن فرمود محتوا برا سند کافی است این محتوا از غیر صادر نمیشه گرچه سند به وجود مقدس امام باقر علیه السلام و سایر فرزندان امام بر می‌گرده امام سجاد مجموعه ارزشمندی از دعا و احادیث رو برا ما به اصطلاح به ارث گذاشتن و یه نکته جالب جالبم اینجا بگم اینو دیدم یکی از مورخین نوشته قد روا علی بن الحسین مجموعه کثیرا جدایه امام سجاد عنایت داشت خیلی از اوقات که حدیث میخونه بگوید امیرالمومنین فرمود چون جامعه ضد علی بود بگوید رسول خدا فرمود بگوید پدرم امام حسین فرمود خیلی از روایتایشون ان عبی ان جدی دلیلش اینه میخاست تراس و آثار پیامبر گرامی اسلام امیرالمومنین و پدر بزرگوارش رو احیا کنه رساله حقوق ایشون من بارها گفتم شما یه وقتی به یک دانشجو گفتم این رساله هستن بنویس رساله ارشد دکتری یه مقایسه کن بین رساله حقوق امام سجاد و اعلامیه حقوق بشر البته بین اون نامه امیرالمؤمنین و اعلامیه حقوق بشر مقایسه شده نوشتن اما بیا یه مقایسه ای بکن اعلامیه حقوق بشر رو حقوق دانای دنیا نوشتن اما راجب حقوق بشر امام سجاد حق دستت هم نوشته حق پات هم نوشته حق گوشت هم نوشته حق چشمت هم آقا چشم حقش بر شما چیه گوش حقش بر شما چیه زبان حقش بر شما چیه همسر پدرت چقدر زیباس این رساله رساله از یک امام آمل حقوقدانای دنیا خودشون نوشتن اول از همم هم زیر پا گذاشتن خودشون عمل نمی تو سازمان ملل با اون چی که نوشتند خود کشورهایی که اینها رو در کشورشون مطرح میکنن عملا زیر پا گذاشتن اما یک امام عامل، اگه میگه حق چشم حق گوش حق پا خودش اول عمل کننده است اینها تراث علمی امام سجاد است دعاها عرض آخرم هم, هم بگم که این قسمت هم باز گاهی ازش قفلت شده مبارزه یه امام سجاد با حکام زبان خودش مبارزه با شمشیر نبود مبارزه با عرض میکنم رفتنه به میدان نبود اما شما میدانید جوانها، آقایون خوهر و سروران معظم تمام حیمه ما سیاسی بوده اصلا سیاست با امامت آمیخته است الامام آرفون به سیاست تو جامعه کبیرم میخوانیم و هم ساستالعباد شما سیاسیون جامعه اید سیاست در زمانهای مختلف اقتضای مختلف داره امام سجاد با حکام زمان خودش برخورد داشت آمد تواف این قصه رو بگم بحث رو جمع کنم تو مسجد الحرام عبدالملک مروانم اومده بود تواف آقا جلوتر از عبدالملک حرکت کرد استخفاف به او بشه بدانت که حاکم حق نیست خیلی به عبدالملک برخورد پرسید این آقا چیه؟ گفتن علی یبن الحسین سید ساجدین فرزند ابو عبدالله علیه السلام همین طور که تواف میکرد اومد جلو دوش به دوش امام به امام عرض کرد یبنه رسول الله پدر شما رو که ما نکشتیم یزید کشت شما چرا به ما بیعتنائی میکنید چرا پیش ما نمی ما آخرت که نداریم خودمان قبول داریم ولی دنیای خوبی داریم دنیا در اختیار شما قرار بودیم آقا فرمودن عبدالملک یزید دنیای پدر منو تباه کرد یعنی او رو به شهادت رسوند دیگه زندگی نکرد تو این عالم. الاز اینطور دنیای پدر منو ازش گرفت ولی آخرت خودش تباه شد اگر دنیا پدر من نماند سال شست و یکی هجری به شهادت رسید یزید آخرتش رو تباه کرد تو هم اگر با ما در بیفتی آخرت تباه میشد اما پولی که به رخ ما کشیدی ابن شهر آشوب نوشته عباش و امام در آورد انداخت وسط مسجد الحرام همه کس ندید یه وقت نگاه کرد عبدالملک حالش بد شد آقا عبارو برداشت دوش کرد عبدالملک اومد کنار گفتن چی بود گفت مملوتهن در را یه وقتی دم تمام این عواپر از در رو نقره و زعب و فز و طلا است امام اینا استبعادی نداره مگر موسی بن نمیزد به دریا میشکافت مگر چشمه از کوه جاری نمی‌کرد مگر يد بیزا نداشت مگر جناب عیسی به احیای اموات نمی‌پرداف انبیا اعمه ما از انبیاء الهی از نظر جایگاه بالاترن غیر از رسول خدا که خب ایشون اول شخصیت جهان خلقت است و در میان خود اعمه هم امیر المومنین هم اینا داشته باشید حتی اون روایاتی که من دیدم راجع به امام حسین هست تأکیده به این که امیر المومنین هم اما این جایگاه و این عظمت امام عبدالملگ مرتبه پس زد این برخورد امام است با حکام ستمگر زمان خودش که دیگه حالا فرصت نیست من عرض می کنم نمونهاشو بگم جمع کنم بحثم رو سی و سه یا سی و چهار سال دوران امامت امام سجاده ایشون جهاد کرده جهاد علمی با تربیت شاگردا با آثار با دعا جهاد در زنده نگه داشتن یاد آشورا جهاد در گفتگو و کوبیدن دشمنان جهاد اجتماعی هم داشته فرصت گذشت چقدر به فقرا مستمندان دستگیری این زندگی 334 ساله امام سجاد علیه السلام است که عرض کردم شرایط بسیار سختی رو از عصر عاشورا اهدیدار امامت شدند و در دوران فتنه و سختی هم به سر بردند تا زمینه کم کم برای امام باغر و با امام سجاد فراهم شد امسال بهتر از هر سال با این همه شبه افکنی، با این همه تبلیغات با این همه تهدید ملیونه ها نفر در کرار حرم عبا عبدالله گفتن لبایک یا حسین چه از ازاداریای امسال خیلی باشه گود جلساتی با پونزده هزار جوان تو این کشور منابر مجالس به همد الله روز بروز پر رونقتر آجان امام سجاد اگه تنها کنار آب می نشستید و گریه می کرد اگر تنها کنار غذا می نشستید هر افطار آب و غذا می دیدید عشق می باشید ببینید ها بود جملهی که امروز زینب کبرا به امام سجاد گفت وقتی دید آقا داره عشق می صدا زد عزیز برادرم این جاها قبر میشه این جاها زیارتگاه میشه مردم میان زیارت پیغمبر خدا هم به حضرت زهرا فرمود بذارید شب پایان جلسه نام حضرت زهرا هم برده بشه وقتی شروع کرد فاطمه زهرا گریه کردن بابا یا رسول الله وقتی این اتفاق میفته من هستم شما هستی باباش امیر هست نه فاطمه جان هیچ کدام از ما نیستیم ولی مردای شیه جمع میشن دوره هم نه است در نه است یجددون الازافی کل سنه زنای شیه جمع میشن دوره هم مثل که برای بچه خودشون دارن ازاداری میکنن برای حسین تو عشق میریزن خدا آدم برای بچه خودش هم اینقدر ازاداری نمیکن یه سال دو سال شش ماه برای پدرش تمام میشن چه کردی حسین چه آتشی به دلها زدی یا عبا عبدالله که اینطور مردم هنوز بعد از گذشت غرنها بر مصیبت تو عشق میریزند کی بدنها رو به خاک سپرد در یه روایتی دارد پیغمبر گرامی اسلام به ام سلمه که او رو خواب دید فربود ام سلمه خودم در دفن حسین حضور داشته خودم بدن حسین رو به خاک سپرد در یه نقل دیگری دارد سید و ساجدین علیه السلام آمدن در یه روایتی هم دارد بنی اسد اینا هیچ منافعتی هم با هم ندارد مرهوم شیخ توسی در عمالی دارد جهای دیگم هست بنی اسد وقتی آمدن برخلاف این که مشهور شده قبر کندن وقتی آمدن وجد و قبورن محفورا دیدن یه سری قبرهای آماده است نمی دانم ملائکه گنده بودند. پیغمبر یرامی اسلام آماده کردند و وجدو تویورن بیزا دیدن یه سری پرنده های سفید بر این بدنها نشسته بالم با داخته این تو نقل هست مرحوم مقرم و دیگران هم دارن سید و ساجدین چون روایت از امام رضا است من عرض میکنم. امام علی ابن موسر رضا فرمود جدم امام سجاد کوفه محبوس بود به ازن خدا اومد کربلا این بدنها رو به خاک سپرد. حالا دو تا قوله بنی اسد ایشونا شناختن یا نشناختن اما بدنها با دست امام سجاد میانه قبر رفت شنیدید تک تک بدنها به خاک سپرده شد اما یه وقت نوبت به بدن پار پاره فاره حسین رسید آمد کنار بدن یه قطعه بوریا بدن ابا عبدالله رو میانه یه قطعه یه بوریا پیچید چند قدمی بدن رو تشییع کرد قتلگاه رفته ها فاصله قتلگاه تا قبر امام حسین چقدره چند قدمه چند قطره قطعه ای بدن و چند قدمی تشیی کرد با عشق چشمش بدن و غص داد شست و شو داد خودش رفت میان قبر صورت که نیست سر که بالای نیزه است چجوری صورت رو خاک بگذاره چجوری رو رو به قبله کنه میان قبر رو کرد به بدن اباتور اما حزن فسرمدو اما لیلی فمسحدو بابا دیگه شبو خواب ندارم بابا دیگه اندو هم تمام شدنی نیست تو بال ارزن لرزن تزمنت جسدک شریف بابا خوشا به اون زمینی که بدن تو رو میان خود گرفته یه جمله گفت نمیدونم پا قدش رو داری بگم یا نه گفت بابا همه مصیبتات یه طرف قتلوک و من شرب الماء منوک بابا یادم نمیره تو رو بالا به تشنه کشدند یه وقت بنی اسد دیدن صدا قد شد بیان کنار قبر ببینن وزه خده ها نهره شریف صورت شو گذاشت رو گلوی بریده همون جایی که زینب لبه ها گذاشت هر کسانی که استیم سمرت بیا حسین مادینه شم چاربو ب. Mi suzado, zekre کربلا و شام غمها بالا و شام غمها داغی کربلا و مدینه شد کربلا مدینه شد کربلا لالایی شده در شور و ای شده در شور شو و شو چربو علای در شور و چه ای سوزد و زهرکی ذکر لابس شده حسین حسین لا شده هم در دلش داغ گل‌های دل اشتیاق گل‌های داغ کربلا و شام غم ها لا با و یا <سؤال> <سؤال> <يا> حسین یا <سؤال> حسین یا <يا> حسین یا <سؤال> حسین یا حسین یا حسین مدینه شد کربلا مدینه شد کربلا آلاله ای شده در شوشه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 داغ کربلا شام داقه داقه و شام قمها ها شام غم داغ کربلا و شام غم ها یا زهرا سن یا زهرا الله خاکتر افتاده بود میزند بالو پر از تشنگی تشنه همچون شاه آتش بر نیلو پر از تشنگی با دلی قرقه در شرار رد با یاد تشنه گهوار رم با یاد تشنه گهوار رم یا حسن یا حسن یا سار الله یا حسن یا سار الله یا حسن یا حسن یا مدینه شد کربوبلا Alla requiredammans ger oss som ett av poured i färg. other slötte ett färg. Hossin blev become� slateRadier. Her body gjorde deel很多 material. In den i hands of the air. Her واقع کربلابوسان یا حسین یا حسین یا حسین پاسارنا یا حسین یا حسین پاسارنا یا حسین شام بلا اما بو کوچه های جسارن تا تراته شام بلا امه و کوچه های جزاره برگردن و سر و دسته رد پای زنجیر اصاره در میان شهر نامهرمان دختری جان داده کنج ویران دختری جان داده کن